تعریف دو بوم. که شاید انصب مباحث اصولی و فقهی باشه و مرتبط به خیلی از مباحث کلامی هم باشه این تکلیف و تشریع المولوی المختزی للفعل عبد ترک تشریعی که مولوی باشه و مختزی فعل یا ترک باشه این تعریف تکلیف دو مرتبط به مکلف مراد از مکلف کیه در عبارت مصنف دوتا تفسیر برا مکلف هست که یکی نظر مصنف و یکی نظر خیلی از محشین و از تعریف اول برا مکلف همون تعریفیه که در برادی اش و خیلی از کتاب کلامی و در تعریفات کلامیین اومده و البالق العاقل القادر الملتفد یعنی کسی که چهار تا شرط درش باشه و مکنفه یعنی بالق باشه عاقل باشه و قادر بر فیلیتت باشه و شرط چهارون ارتفظه البالق العاقل القادر الملتفد که در اسطلاح بهش میگن مکلف فعلی یعنی که فعلا مکلفه هم بروق رو داره بروق معتبر و هم عقل مد نظر رو داره عقلی که برای تشخیص بیاره. نسبت به بروقی من نسبت به موضوع و قدرت بر فعل و تک داشته باشه و چهارم التفاته التفات در کلمات اصولیین به صورت علم مطره یه اردویان التفات همون علم در کلمات متاخرین برشه خانساری هم التفات به صورت تنجز مطره بنابراین سه تا لفظ برای یک معنی یکی التفات یکی علم و سرومی تنجزه مکلف است از کسی که احکام در حقش منجز باشه یعنی علم بیدا کرده به احکام که در استطلاع تعبیر میشه به مکلف فعلی آیا یا مراد از مکلف در عبارت مصنف مکلف فعلی یا قیرینه به خاطر شبهات و ایراداتی که وارد بوده بر مصنف خیلی از محشین و محقق خراسانی در هاشی رسائل اینها عدول کردن از این تعریف به یک تعریف دومی یعنی مکلف رو به بالق آقل قادر ملتفت تعریف نمی کنن. تعریف دومی براش ذکر شده ولی وضع علیه قلم و تکلیف شخصی که قلم تکلیف بر او رفته که در اصولی اصولیین بهش تعبیر میشه به مکلف شعنی کسی یه قلم تکلیف برش رفت حالا در خصوص این مسئله یا, یا مکلف نیست اون تحت شرایط خودش حالا مراد از مکلف اینم مکلف ازل دفت الى حکم شرعی یا مکلف فعلیه یا مکلف شعنیه اختلف الاعلام در تفسیرش و عبارات مصنف دازره به اینه که مراد از این مکلف مکلف فعلی باشه نه مکلفی به انجام فروات فقری بلکه مکلف به شخصی که مکلف و تکلیفی به استنباد داره این در مکلف ازالت فتلا حکم شریع یعنی مجتهدی که مکلف به استنباته اون سه حالت براش پیش میاد یا قطع داره یا شک داره یا ذن معتبر یا ذن غیر معتبر بر حکم داره بنابراین دو تا تفسیری برای مکلف بعضی از معشین مکلف فعلی میدونن بعضی ها مکلف شعنی میدونن مطلب نکته سوم و مطلب سوم اینه که آیا راهی داره ما این رو مکلف شعنی بدونیم كما هو المشهور مشهور قائلا به ان مراد از مکلف در این تعبیر مکلف شعنیه نه مکلف فعلی نقطه سوم ناظر به این نکته دومه که اگر مراد از مکلف بخواد مکلف شعنی باشه نه مکلف فعلی یلزم محذور عقلی و اون محذور عقلی در تعبیر اصولین اینه که یکی از قوائد در اصول اینه که مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع باید باشه یعنی اون مبدع باید فعلیت داشته باشه تو بگنی یعنی حقیقت داره و اینکه یک مشتقی حقیقت در متلبس بالمبدع باشه بالفعل یک اصل غیرقابل ادوله اگر کسی قاعد بشه به اینکه این مکلف مکلف شعنیه این برخلاف این قاعده است یعنی یا حقیقت در متلبسه به بالفعل نیست به خاطر اینکه زاره به کسی میگن که فعل ضرب از اون صادر شده باشه نه اینکه در آینده بخواد صادر بشه مکلف به شخصی باید اطلاق بشه که فعلا مکلفه نه شعنیت تکلیف را داشته باشه پس نکتی سوم ناظره به اشکاله اشکال این که این مغایره با یک اصل کلی در این که اتفقه الان بر این که مشتر باید حقیقت در متلبس بالمبدع باشه بالفعل یعنی مکلف وقتی میگن با شخص فعلا مکلف باشه تا بهش بگه مکلف در موارد شعنی اون مبدع صدق عرفی رو نداره و برخلاف این اصله حالا این رو طبق موانی که در باب مشتر میاد جواب میدن خود شیخ انساری در مطاره هلانزار که رسمت الفاظ مباحث درفای خودش بوده در اونجا جواب میده آخوند قراسانی در حاشیه و در کفایه به نحوی جواب میده که وضع از اونها اشاره میکنیم ولی علاقون لحال یک شبهی مطرعه اگر کسی بخواد مکلف و مکلف شعنی معنا کنه این بخلاف اصله چون اصل اینه که مشتر باید دقیقت در به بالمبدع باشه بلفر به شعنی شعنی شخصی که الان فعلا مکلف نیست تکلیف نداره الان خود مستعج چه تکلیفی به احکام حیز داره در آینده متلقی به احکام حج نمیشه ولی الان براش یا شک حاصله یا غت حاصله یا شک در یا زن داره یکی از حالات براش حاصله حالا برای توضیح عبارات داریم میگیم به این دلیل که تصبوخ الدین مستعج معنا کنه در بقیه موایز در ادامه موایص هم باید اینو به یه نحوی معنا کنه که همین معنا رو بده ولی اگر کسی اهم از مشتهد و مقلد بدونه اونها باز یه طوری تفسیر میکنن که این شبهات به یه نحوی تح بشه و تح بشه اشکالش اینه که برای همه حاصل میشه چرا به خصوص مشتهد ما بلا یه مسئله رو بخواییم بهش التفات پیدا کنیم این سه حالت رو داریم دیگه چرا خصوص مستهه؟ عوام هم این طوره. مطلب سوم اینه که آیا این سه حالت درسته یا دو حالت درسته مصنف قائل بینی که اگر کسی التفات پیدا کنه سه حالت براش پیش میاد یا قد یا زن شک یعنی تقسیم رو سلاسی میدونه تقسیم باید سلاسی باشه یا باید سنایی باشه محقه خراسانی در هاشی رسائل قائل به اینه که تقسیم باید سنایی باشه این مکلف وقتی التفات پیدا میکنه به حکم شرعی دو حالت براش پیش میاد نه سه حالت الان عدقش خدومه عدقش همون چیزی که در رسائل اومده یعنی از حیث اصولی توان و سودی شیخ به مراتب بالاتر از آخند خراسانی و فنیتش هم بیشتره اگر کسی بخواد اظهار نظر کنه که کدوم یکی از این دو مقول فنیتره نوعاً مطالبی که شیخ مطرح میکنه فنی تر از مطالبی که آخند مطرح میکنه این تقسیم های سلاسی باشه یعنی این شخصی که التفاد پیدا میکنه به حکم شرعی این سه حالت براش هست یا قطع به حکم شرعی داره علم لدون نیداره قطع پیدا کرد یا از بدیهیات قد پیدا میکنه یا اینکه زن معتبر یا زن غیر معتبر برش قایم میشه یا واقعا شک داره مردد اینکه که این حکم چیه تقسیم باید سلازی باشه این که داره میگه به خاطر اینکه از نظر ارتکضی هم همینه بعضی از موارد مواردقدرع پیدا میکنیم بعضی از موارد زن بعضی از موارد شک اینکه حالات مرتبط به علم زیاده و دو حالت از حالات شاخص زن و شک یعنی کسی نمیتونه زن رو اینکارش کنه. حصول زن به بعضی از مطالب غیر قابل این ما به خیلی از مطالب زن داریم حالا زن ضعیف یا زن قوی قطع صد درصد نداریم شکم نداریم پس از نظر انتقاضی غیر قابل انکار حالت زن محقق خراسانی اومده حالت زن و انکارش کرد بگه به خاطر اینکه زن یا, یا معتبر یا غیر معتبر اگر معتبر باشه ملحق به قطع اگر غیر معتبر باشه ملحق به شک بنابراین ما حالت ثومی به نام زن نداریم و شخص در مسائل شرعی و در رابطه با احکام شرعی نمیتونه زان باشه یا قاتل یا شک این تقسیم سنایی غیر قابل قبوله و اقوا دلیلی که میشه برش قام بکرد بر اینکه این تقسیم سنایی درست نیست بیر از اینکه برخلاف ارتکازاته امده ترین دلیلش اینه که قطر خودش تقسیم میشه به دو قسم که در مواعظم میاد قطع یا موضوعیه یا طریقیه و به عبارت این اخرى قط دو قسمه قط ویجدانی و قطع قیر ویجدانی بعضی از موارد به خمریت یک مایهی علم ویجدانی و قط وجدانی حاصل میشه ما یقین داریم خودمون وجدانم که این خمره بعضی از موارد دیینه قام میشه بر خمریت یا بر نجاست و ها، اولی وجدانیه دومی غیر وجدانی یعنی دیگری گفته هر چیزی خارج از وجدان باشه زن هر چیزی خارج از وجدان باشه یعنی علم غیر وجدانی در تمام اصطلاحات چه فلسفی، چه اصولی و چه عرفی بیزن گفته میشه بنابراین سبب به مسائل اصولی اینه که ما تقسیم رو سلاسی بدونیم چون بعضی از موارد علم وجدانی به حکمی از احکام داریم بعضی از موارد علم غیر وجدانی، علمی که از امارات حاصل میشه، علمی که از بیانه حاصل میشه علمی که از شهرات حاصل میشه علمی که از اجماعات حاصل میشه تام اینها علم قیره وجدانیه. علم قیره بجدانی در حقیقتش در سه استلاح فلسفی و اصولی و عرفی زن بدون مناقشه و اگر ما بیایم بگیم زن اگه معتبر باشه ملحقه به قطعه این انکار علم قیره بجدانیه یعنی شما اماره رو یک علم وجدانی باید بدونی اگر کسی اماره رو مثل آخوند و علم وجدانی تلقی کنه که در این بحث تلقی کرده لازمش اینه که هیچ موقع انکشاف خلافی رو در امارات قاید نشه به خاطر که وجدانی شده دیگه اگر در یک حکمی از احکام اماره یا بیانه یا شهرت و چی اقامه بشه و این رو ما ملحق به علم وجدانی بدونیم وجدانیات ملحقاً به اولیات و بدیهیات و قطعیات و از ای که بر اینها مترکت میشینی که غیر قابل تخلف باشه و انکشاف خلاف در اینها اصلا معنا نداشته باشه با اینکه انکشاف خلاف در امارات در بیانه در شهرت در اجماع، در همه اینها خود آخون قائله به اینکه در مواردی که زن معتبر قائم میشه بر چیزی منر محتمل که انتشاف خلاف بشه بر خلافش زن می پیدا بشه یا علم وجدانی بر خلافش بعدا حاصل بشه اینا رو همه رو قائله بنابراین انکار تقسیم سلاسی این محضور رو داره که مساوی با انکار تقسیم قط به قط وجدانی و قید وجدانی اونهایی که قائلن به وجود دو قسم برای قط یعنی قط وجدانی و قط غیر وجدانی علم وجدانی و علم غیر وجدانی اونها نمیتونن تقسیم سلاسی رو ردش کنن و خیلی از محشین مثل اوسق و بحرال فوائد و سید یزدی اینها مصردن برای اینکه تقسیم باید سلاسی باشه و این عدق و فنی تره بنابراین عدل احکام در نکته چهارم نکته چهارمی که باید بگیم اینه که عدل یه احکام سه قسمه عدل یه احکام یا وجدانیه یا غیر وجدانیه و اون غیر وجدانی تقسیم میشه به دو قسم اونهایی که غیر وجدانیه یا قواعدن یا اصول بنابراین عدل یه احکام تقسیم میشه به سه قسم کلی یکی وجدانیات در موارد انسان علم به حکم شرعی داره علم وجدانی به حکم شرعی داره دوم قواعد و سوم اصول یعنی در تمام موارد علم و قط یعنی علم وجدانی در موارد زن همون قواعد، در موارد شک اصوله و قواعد خودش تقسیم میشه به سبب خود قواعد تقسیم میشه به سه قسم یکی امارات دوم اصول لفظیه مثل اطلاقات مثل عمومات و امثال این ها از اصول لفظیه و سوم اصول غلائیه که در حیطه فقهی و اصولی اصول اقلایه خیلی مخفیه یعنی در خیلی از موارد ما تمسوک به اصول شرعیه می‌کنیم با قفلت از اصول اقلایه و نوعا خیلی از موارد اصول اقلایه برخلاف اصول شرعیه نتیجه میده یعنی فتاها محاکست میشه با فتاهای مشهور به خاطر این که مختزای قواعد اقلائیه یه چیز دیگه بوده پس در یک تقسیم کلی عدلده احکام یا علم وجدانیه یا قواعده یا اصول و قواعد میشه به سه قسم یکی اماراته که عمده موارد در باب بادات همینه شد در درصدش همین امارات باشه دوم اصول و قلائیه که 90 درصد مسائل معاملات همین با اینها اثبات میشه و سوم اصول لفظیه که در هر دو باب راه داره نسبت به کشف ظواهر ادله و اصول و قلائیه را این وقت بذارن خیلی روش تمرکز کنن و دقت اگه داشته باشن در مواسه شیخ انصاری اهتمام اصول و زیاد زیاده به خلاف متقدمی مثل شهید که اعتناعی به اصول و قلایه نداره یکی از مسائلی که برای وضوح مطلب خوب من بگم اینه که در مسائل اختلافی در شرح لومه بعضی از موارد می اختلف البایه با دیگری یا اختلاف دو نفر در رابطه با یک شیع خارجی یکی میگه فروفدر یکی میگه بکردی یا اصل عدم البیعه یا اصل عدم الهبه مشهور من جمله شهید سانی و قاطبه موسعین قائلا به اینکه اصل عدم بیعه اصل عدم بیئه و هبه رو اثبات میکنن در موارد اختلافی این تمام از موارد تمسک به یک اصل شرعیه یعنی اصل براعت ذمه این شخصه از عوض بی بنابراین بی نیست هبه بودنش ثابت میشه و این اختلاف اینطوری حلش میکنیم شخص زمهش بریه از اینکه که بدهکار باشه به این یکی که مدعیه یا به استثاب یا به براعت به هر کدام براعت ذمه حاصل میشه و اختلاف رفت میشه با تمسک به یک اصل شرعی یا براعت یا استثام ولی نظریه مقابل اینه که در این موارد نوبت به اصل شرعی میرسه به خاطر اینکه اصل شرعی در رتبه متاخره بر اصل اغلاعیه اصل اغلاعی اینه که اون چیزی که مرتکزین در ازهان اینکه کسی چیزی رو مفتی و مچیانه به کسی نمیده بنابراین اصل ادم الهبه است نه اینکه اصل ادم الی باشه اصل او و ارتکازات او اگر استکشاف بشه این محکم میشه بر اصول شریعه و نتیجه ای که در این فرع فقهی گرفته میشه اینه که اصل عدم الهبه بنابراین شخص زمش مشغول به عوض این عین در خارجی. به دهکار حساب میشه و این دو تا فتوه معاکس همن یعنی با تمسو که به یک اصل شرعی اصل براعت زمه است با تمسو که به یک اصل بغلایی اصل اشتغال زمه است و دو فتوا معاکسه به این نیاز داره به بررسی در خیلی از فوقات و اگر تنبهی به این مسائل باشه آن میتونه خیلی زود در مواردی که شبهی در مسائل پیش میاد به فتوای خودشون برسن این نکته چهارم که در تقسیم ادله احکامه پس ادله احکام به یک ترتیب منطقی اول علم وجدانیه دوم زن و سوم شک در موارد زن قواعد بهش میگن یعنی ما و الفرض بین القاعده و اینو قبلا گفتیم در جزوه هست و تنها کتابی که من قبلا گفته بودم متعرض از این مطلب شده فرق بین قاعده و اصل تغییرات مرحوم شاه به نام نتائج افکار در اونجا میگه ماهوال فرق بین القاعده و است ایشون یه چیزی گفته مبهمه یعنی فرق فارقی زیر نشده همین اصل مطلب رو گفته که فرق از بین قاعده و اصل قاعده رتبش مقدم بر اصله ما بگیم قاعده تهارت یا اصل تهارت بگیم قاعده تهارت بگیم اصل تهارت درست نیست قاعده رتبش مقدم بر اصله در موارد قط علم وجدانی مقدم بر همه در موارد زن اون چیزی که اعمال میشه قواعده نه اصول خود قواعد تقسیم میشه به سقست که یکی امارات دوم اصول لفظیه که اونم جز اماراته اطلاقات عمومات جز اماراته و یکی قواعده اصول وقلاییه که اونم جز اماراته یعنی بنای و وقلایی عرف همه اینهای جز امارات حساب میشه بنابراین اینها رو میگن قواعد قواعد در رتبه مقدم بر اصول که در موارد شک جاری میشه پس این ترتیب یک ترتیب منطقیه همیشه در استدلال بر احکام اول علم وجدانی دوم امارات و سوم اصول عملیه نکته پنجم در رابطه با اصول اصول عملیه اصول عملیه یا منحسنه در چارت هاست یا منحصر نیست اختلف الاعلام در حقیقتش چیزی که شیخ انصاری قائله و لسان و شیخ محقق ناینی در فواید اصول توضیح بیشتر داده، اینه که خود اصول حس اقلی داره در حس استقراعی داره در چهارتا، ولی مجاری اصول حس اقلی داره در چهارتا. یعنی بین اصول و بین مجاری اصول فرقه حسر اصول در چهارتا حسرش استقرائیه میشه چهارتا نباشه تا باشه غیر از استصاب و براعت و احتیاط و تأخیر اصول دیگه هم داریم اصل تهارت باشه اصل براعت ذمه باشه اصل عدم باشه همه اینها ها اصولی که میشه ملحق بشه به این چهارتا بنابراین اصول حصلش در چهارتا استقراییه استقرا کردن دیدن از اول باب تهارت تا آخر دیاد اصولی که کسی رو دورانه همین است. بقیه اصول کسی رو دوران نیستن یا در خیلی از باب ها راه نداره الان اصل تهارت در غیر باب تهارت راه نداره و ساید اصول بنابراین حصر چهارتا حصر استقراییه یعنی به استقراع اعلام دیدم غیر از این چهارتا یکی اصلی که در همه ابواب فقری جاری و ساری باشه ندارن ولی مجاری اینها حصرش عقلیه حصر عقلی یعنی منحصر بین نفری اثباته انحصار درش هست و اگر چیزی درش انحصار باشه خوبه باید دقت اگر چیزی درش انحصار عقلی باشه یعنی واقعی و تکوینی و قهریه حس عقلی مرتبط به تکوینیات و عقلیات و واقعیات یعنی در مواردی که ما نسبت به یک حکم شرعی شک داریم دو حالت بیشتر تحقیل خارجی و تکوینی نداره یا حالت ای هست یا حالت ای نیست بنابراین دائر بین نفی اثباته اگر چیزی دائر مدار نفی اثبات باشه بهش میگن حسد عقلی حسد عقلی یعنی تکوینی و واقعی اعتباری نیست ما بیاییم چیزی را از خودمون اعتبار کنیم اضافه کنیم یا کم بکنیم مجاری اصول هستش در چهارتا تا عقلی به این معنا که در موارد شک در حکم شرعی یا حالت سابقه هست یا نیست حالت سوم نداره بیایید بگیم یک موردی پیدا شده نه حالت سابقه داره نه حالت سابقه نداره اگر چیزی داخل مدار نفی اثبات باشه میشه هستش عقلی اگر هست عقلی باشه میشه واقعی و تکوینی برخلاف خود اصول خود اصول انحصارشون در چهارتا حصرش استقرایی خیلی اهمیت چندان ها چندان اینها نداره ولی دو تا تقریب برای این تصویر مجاری اصول و خود اصول در چهارتا ذکر شده که مصنف مطرح کرده و اولی رو میگه تسامح درش هست دومی درش تسامح نیست و این رسائل رو میشه دوت کنید ببرشید. دست شما ایلمانن المکلف زلتفت ایلا حکم شریف ایمان یه سلاله الشک اویل قط اویل زن فین حسلاله الشک مرج عفی هل قوائ و شرعیت و, و ثابت فی مقام عمل اگر شک داشته باشه مرجع قود شرعه و اصول عملیه و توسم ما به اصول عملی یا که بعض یا اقللی بعض یا شرع ویه منحصرتون فی براتن، اینا انحصار داره در چهار تا یع یعنی اصول عملی، منحصره در چهارتا منتها خودشون خود اصول یعنی جاریاتش نه مجاری خود اصول انحصارش استقلاعیه ما خودمون دیدیم از اول فقر تا آخر فقر یک اصلی که کسی سیرات دوران باشه غیر از این چهار تا چیزی پیدا نکردیم ولی مجاری ها چون دایر مدار نفعی اثباته هستش عقلیه و یه منحصر اتون فیار بره. چرا لعنش شک اما اینیل یوم هزفیه الحالت سابقه یا حالت سابقه درش لحاظ میشه یا حالت سابقه درش لحاظ نمیشه نکته ششم در رابطه با همینه در رابطه با فرق بین وجود حالت سابقه و لحاظ حالت سابقه آیا چیزی که در استثاب مطرحه صرف وجود حالت سابقه هست یا لحاظ حالت سابقه بعضی از موارد اصلا حالت سابقه ای نیست یک مسئله برای ما بیش اومده قبلا هیچ یقینی بهش نداشتیم حالت سابقه اصلا نداره بعضی از موارد حالت سابقه داره منتها لحاظ نشده در تمام موارده شک در مکلف در مقام امتصال اگر انسان شکش در مقام امتصاد در مکلف به باشه مثل اینکه وقت باقیه و شخص شک داره که آیا نمازش رو خونده یا نخونده صحیح خونده یا نخونده اگر شک ما در مقام امتصاد در مکلف و به باشه مقتضی احتیاطه یعنی الاشتبال و یقینی یا صحت در این موارد حالت سابقه داریم حالت سابقه اینه که اون موقع که ما به دنیا اومدیم نماز رو نخونده بودیم یا صحیح نخوندیم اون موقع که ما بالغ نبودیم کندف نبودیم این نماز رو نخوندیم الانم نخوندیم با اینکه حالت سابقه داره این حالت سابقه لحاظ نشده با اینکه وجود داره لحاظ نشده حالا شرط جریان استثاب وجود حالت سابقه است یا لحاظ حالت سابقه اتفق الاعلام جملتاً غیر قابل انکار و شبهه و اجماعی هست بین معاصرین و متأخرین و قدما اینکه اون چیزی که ملهوز در جریان استصاب لحاظ حالت سابقه حالت سابقه باید لحاظ بشه در صرف وجودش کافی نیست و بهترین مثال به صورت یک قاعده تمام موارد شکی در مکم به در مقام امتصال یعنی تمام موارد الاشتغال و یقینی یستد ای البراعت یقینیه این برخلاف وجود حالت سابقه است. به خاطر اینکه حالت سابقه عدم ایتیان این معمولون به حالت سابقش اینه دیگه با اینکه حالت سابق عدم بوده قاعده ایتیاد جاری میشه نه استساب پس در تمام موارد شک در مکنل به در مقام امتصال از مجاری لحاظ حالت سابقه با اینکه حالت سابقه بوده و باید به استساب چون استساب رو میگن عرشل اصول و فرشل العدله باید در مواردی که حالت سابقه هست به استصاب تمسک چرا به احتیاط تمسک میکنن عدول اعلام و فقها از تمسک به استصاب و تمسک به احتیاط دلیل بر اینکه وجود حالت سابقه کافی نیست و حالت سابقه باید لحاظ بشه حالا سمرات خیلی دقیق برش مترتب میشه که قد قفل انحول اعلام یعنی خیلی از اعلام الان دارن تصریح میکنن اینکه حالت صبر باید لحاظ بشه اگه حالت صبر لحاظ نشه فایده نداره در جریان استصال و این یک نکته خیلی اساسی که نیاز به توضیح داره و تحقیق میخواد اینه که این لحاظ کی باید لحاظش کنه آیا مکلف باید لحاظش کنه یا شاره باید لحاظش کنه اصل ملاحظش بحث نشده و چون ملاحظ بحث نشده کی باید لحاظ میکرد رو در خیلی از فروات استصاب اختلاف میشه با اینکه از مجاری صد درصد استصابه خیلی شبهه میکنم بگن حساب جاری نمیشه با اینکه حالت سابقه هست پس لحاظ حالت سابقه یک شرط مسلم اندن مشهور منطقه این که این حالت سابقه رو کی باید لحاظش کنه حالا این مثالی که ما زدیمینه شاره لحاظ کرده شاره حالا طبق نسبت مشهور میگن فرموده اشتغال یقینی از تدیل براعت یقینی اشتغال یقینی به نماز بوده براعت یقینی حاصل نشده بنابراین باید دوباره بخونی پس با تمسل که به قاعده عقلیه یا اثبات کردن به اینکه لحاظ حالت سابقه معتبر نبود حالت سابقه ولی دیگه بحث نمیشه که این ملاحظه کی باید باشه آیا مکلف باید لحاظ کنه یا دیگری این رو در شرایط استصحاب آقای مراجعه کنن یکی از شروط جریانه استصحاب یقین سابقه حول یقین سابق این بحث مطرحه این یقین سابق باید حاصل شده باشه یا ما فرض بگیریم الان فرضی بحث کردیم که این شخص وقتی به حد بلوغ نرسیده بود نماز رو نخونده بود مثلا هم نخونده یعنی ما فرض کردیم یقین رو فرضی گرفتیم یقین فرضی یعنی ملاحظ شارع باشه ولی اگر بنا باشه یقین معتبره در ارکان استصاب یقینی باشه که فعلی باشه نه فرضی اونجا ثابت میشه که ملاحظ باید خود مکلف باشه حالت سابقه رو مکلف باید لحاظ کنه نشاره علا حال یه فرق اینطوری هست در حواشی هم آقایم میخونن این فرق بین وجود حالت سابقه و لحاظ حالت سابقه یک فرق محسوسیه امانیولا حضفیه حالت سابقه املا حالت سابقه میخواد عدم باشه میخواد وجود باشه میخواد حکم شرعی باشه میخواد موضوع حکم شرعی باشه فرقی بین این هم نیست و علت در مواردی که حالت سابقه دهاز نمیشه فیما امیم امیم که نه فیل املا یا احتیاط درش ممکنه یا ممکن نیست اگر احتیاط ممکن باشه احتیاط اگر ممکن نباشه تو حالت پیدا میکنه و علت اول فیما یکون یکونش شکر. به تکلیف یعنی در موارد که احتیاط ممگنه یا شک در تکلیف اصل تکلیف یا شک در مکلف به یعنی شک بعضی از موارد در مقام جعله بعضی از موارد در مقام مجعوله شک در تکلیف یعنی مقام جعل شک در مکلف به یعنی مقام مجعول بعضی از موارد در اصل جعلهو شک داریم که هایا شور به توتون حرام هست یا نیست یا در تکلیف که مجرای براعته بعضی موارد در مکلف به شک داریم با علم به اصل و تکلیف به اینکه که اصل وجوب نماز زور معلومه ولی مکلف به آیا امتصال شده صحیحن یا نشده این از مجاری احتیاطه بنابراین این یکون شک و به تکلیف یعنی اصل تکلیف و اصل جر و مقام جر که مجرای براعت میشه او فل مکلفه به که مقام احتیاطه فل اول یعنی ملاحظه حالت سابقه فل اول و مجره استساب و ثانی مجره تخییر و ثالث مجره اصل البراقر و رابع مجره قاعدت احتیاط این تصویر اول که مسامحاتی درش هست قسم اولش حالت سابقه لحاظ میشه قسم دوم که احتیاط درش ممکن نباش فایمو هم یونگنم احتیاط یا اولا چون تخییر مجره تخییر مواردی که احتیاط درش ممکن نیست میگم که این تعبیر تصامح داره در مواردی که احتیاط ممکن نباشه، مَزْهَر تأخیر اتفاق احتیاط درش ممکن نباشه. در مواردی که احتیاط ممکنه، خودش دو حالت داره، یا شک در تکلیف یا در مکلفو که اولی میشه برائت، دومی میشه احتیاط. این تسامح داره، هم بیانش، هم تعبیری که مصنف کرده، هم اول و دوم و سوم و چهارمی که درست کرده. این داره تسامح بوده قیل از اینکه اشکال فقهی برش وارده، ادول میکنه از این تعبیر به یه تعبیر دومی و به عبارت این اخرا که این عبارت دوم صحیحه، عبارت اولی اصلا غلطه. یعنی حتی در چینشش غلط داره. اولی، دومی، سومی و چهارمی که این چیزی که داره میگه، اینطور در نمیاد. چون این مسامحات و اشکالات درش بوده، ادول کرده به یک و تصویری که نه این ایراد شکلی برش وارد باشه نه ایراد فقهی ایراد فقهی عمده ترین ایراده حالا شکلش مهم نیست ما بگیم این دو قسم میشه یا دو قسم نمیشه این شکل در تکلیف است یا مکلف هم به مهم ایراد فقهیه لذا این تعبیر در خیلی از کلمات متأخرین مطبوع امایولاه از شکل امایولاه از فیال و سابقه املاد این حالت سابقه داره یا نداره لحاظ میشه یا می؟ نمیشه فل اول و مجرد استصاب این الان درسته اولی مجرای استصابه بل اتفاق و ثانی در مواردی که حالت سابقه لحاظ نمیشه اما این یکون از شک و فیف این اولین تقسیمش اینه نه اینکه اولین تقسیمش این باشه احتیاط درش ممکن است یا نیست اولین مرحله بعد از این که حالت سابقه لحاظ نمیشینه که آیا شک در تکلیفه یا شکتر مکلفه بهه فل اول مجر برایه و از ثانی خودش دو حالت داره یا احتیاط درش ممکنه که احتیاط اگه احتیاط درش ممکن نباشه مجرهای تخییره و مازکرناه و اخیلند یعنی در به عبارت نخرا وول مختار فی مجار اصول الاربعتل ال شرعیه. مجاری اصول این دقیق تر این سعی قبلی اشکال داره و قدوقع اختلاف فیها اختلاف درش هست و تمام الکلام فی کل واحده این مکول و نلا محله بنابراین در سه تا مقصدیشون میخواد بحث کنه و میمونه اشکال فقری که بر این تعبیر اولی و تصویر اولی بوده چیشون متعوض نشد اشکال فقهی برش وارده یعنی کسی در مقام استنباد وارد میشه طبقه اولی نمیتونه عمل کنه بگه حالت سابقه هست یا نیست بعد اگه حالت سابقه نباشه یا احتیاط درش ممکن هست یا نیست اگر ممکن باشه شکیات در تکیبی یا در مکل به این از نظر فقهی غلطه با به عبارت این این اشکال فقهی رو نداره فردنش الله توضیح میدید ما طالبی که گفته میشه آقایینی که میخوان بیان خودشون بنویسن ما جزوهم بخوایم بدیم یک هفته بعد جزو می <تصفح> یکی از ما همچنین می‌دانیم که این مسئله‌ای است که ما ما e più che un'altra quando ela